یه کار ما پس باقی داستان سیاوش به هم آقای دریابندری فوتوکفی میکنن میدن خدمت توم. در این ترم ما فقط همین داستان سیاوش کنید و شما لطف می‌کنید. همون کاری که استاد ما با ما میکردن ایشون می‌فهمند که تکلیف شما اینقدره مثل این کتاب بعد دانشیان کتاب رو مطالبی میکردن یه تحت دقیقه اول وقت میردن هر کسی اشکال داره بپرسیم شما اولاد کنید این داستان تا آخرش میخونید من اول وقتم وقت میذارم هر اشکال داشت اونجاهایی که میدونید حتما نمیرسید دیگه سرکراست نمیرسید درستی کنید اونجاها رو بعد مطالعه میکنید خودتون اشکالی اشکال یک از من میپرسید بنده هم میکنم حالا مریم سر مطلب بیت چهله میکنیم کدوم یکی از اولامون میکنی میکنی بکن دلپناه دوونان کهل دوونان برو برو برو گم سر چولس نوزار بیا زدم گش چاین گفت کیم ترک من یافتم ز پیش سفا تیز اشتافتم به دو گفت اید ای سفه دار شا نبا من برابر بودی بی سفا سوال که جلوش بگیم که نبا من برابر بودی بی سفا همان توس نوزر بدان بستوحید بس بستوحید الان از این سوتو آمدن به سوتو آمدم فرصه بدان دست کهید کجا پیش پیش کجا پیش اصل من اونجا دید به دو گیر گفت به دو گیر گفت این سخن خود مگوی که من تاختم من تاختم پیش آه که من تاختم پیش نقشچی دیو به بحر پرستنده گرم بوی مگر در به بهر پرستنده گرم بوی مگر جوانمرد پرخوش جوی سخونشان دتون سخونشان سخونشان به جایی رسید ام. که این ماه را سر به باید بود. به با به با. بالاخره این جوری سنگ خرجون بعد وقت وقت رو سرش می‌برین میونشان چونان داوری شد را میونجی به آمد یک سفر که این را برای شاه ایران برید بران خونه طولهت هر فرمان بران کونه یعنی بعد چیزی که اون قرار بده هر فرمان دید نگشتن هر دوز گفتار او برای شاه ایران نهادن رو. بسیار زود زود. می... این ها می فهمید این رو که جربتشون شد دو شیزه زیبا بود این میخواست اون برش داره اون یکی میخواست اون داره اون که گفت من اول اومدم گفت نه رو تو اول نمیدیم من اول اومده منزی هر پا این به گوه اون بشنو نه تونستن هیچ کدوم از سر دخترک نمیتونستن بگذرم گفتن نهستن سر چوی باریم میریم و بعد میگه میونجی آمد و که گودرز همراه بود بوده گودرز و خیراتمنزی معروفه با این که پردوزی از نیبره ظاهران آمده و گفته که آخ این که معنی نداری دکتر بیچاره چون تقدیری داشته و ببریدش پیش شاه هرچی شاه گفت تیز کنید اطاعت کنید عمد کنید به همین قرار رو رو رو رفت حالا دل پهلوانان بر اون گرم گشت یعنی خوشت رو مدادش روشش داشتم سر توس بیا بیازر گشت گفتم توس پسر نوزره توس نوزر یعنی توس پسر نوزر نوزرم پادشاه ایران بود که کشتنش افرسی ها هم پسرش ولی توس معروفه به تندی و بیخردی و دیوونگی یعنی دیوونه که نه ولی خیلی زبود خشبگی میشه و همینجا اینجا هم اول میگه که سر توس نوزر بیادر بود یعنی شروع کرد به سرسیبه کرد چون این گفت کین من یافن اولا گفتم اون دفعه برایتون که تورانیان ها ترک نیستن ولی فردوسی خیال کرده که ترک هم. این یکی اما معنی دوبام بره ترک اگر به زن اطلاق معنی زن خوشگل و معشوق و شاهل فراخی سیستانی میگه ای ترک من امروز نگویی به کجایی یعنی ای محشون کنم ترک معنی محشون کنم حالا چرا؟ اینو بفهم چرا؟ چرا زیبا یعنی پارس ها زیبا نبودن چون که باید این که نه اولا ترک که میگن هیچ مراد بونه تصبری که ما الان از ترک تورک نیستم ترک یعنی نژاد زرد این اوریان چشمه های اصلاً تو زبان زبون ترکیه هم مال اینا اگر جاهای دیگری مثل ترکیه فعلی چه قبلا چی بود ترکیه؟ یادتونم؟ بیزانس بود روم شرفی؟ روم شرفی؟ همینه الان هم در مثلا سوریه که اینا جز امپراتوری عثمانی بود در سوریه در خود ترکیه بسیار ادامه اصلا کیف اروپایی هستن اصلا, اصلاً. بلوان چشم آبی ها اصلا اینا ترک هم بودن اصلا زبون ترک هم نداشتن ترکان سلجوقی یه دسته اطابکان به اصطلاح آسیای سقیر آمدن اونجا حکومت زبونشون ترکی بود ترکمنی بود اونجا بنابراین ترک که میدیم ترک در ادب فارسی سعدی نافذ فرخی ما ببیندنم شاهنامه تورک که میگیم مراد زرد دوسته اینو یادتون باشه این اول خب حالا بفرمیم که چرا به من یه مشروع بود باشیم <تصفيق> خوشگیزشتاشون رو میگرفتم خوش هماری میگیرن هر طورم که اونجه ها چون مسلمون نبودن به اصطلاح مسلمین دارالکفر بوده اونجا دیگه ار راق میتونستن میتونم همه میکردن زن و بچه و سر و دختر و مردم مردمون میگرفتن اصلی میوردن تو بازار این است که بسیار از اونجا گلام و کنیز تو بازار از اون و در که مرز این قوم بود از اونجا میاردن از اون طرف هم در همون مرز روم و روس و کنیز غلام بلغاری و مهم دونم روسی و رومی از اون میوردن اون برم که مرز اسلام طرف افریقه و اینا بود کنیز سیاه میوردن و غلام سیاه که معمولا جاشون تو آشپسگونه بود و کارای پست و آب کشدن از چاو و این و از هند هم کنیز هندی میورد و ارزونترین و بسترین اینا هندی ها بودن برای اینکه معروف بودن به اینکه هم استعداد ندارن هم اینکه یه قدری دستشون کجه احل دوزی بودن اینه که بیارزشترین غلام و کنیز غلام های اما ترکا چون سوار بودن هم جنگاور بودن هم حالا مغولستان بودن هم. اینا تیرندازای خیلی درجیه که بودن غلاماشون به کار سپاهیگری پرداختن و عرضش تشکیل میدازن حتی خلافه های عبقصی در بخدا سپاهی از این قلامان ترک تشکیل داده بود که همون هم پدر خلیفه رو در آوردن بعد بهش مسلط شدن، شب میکردنش تو قفص صبح درش میوردن میشتن به صندلی تلافه و بسیار به پادشاهی رسیدن اصلا ترکمانان سلزوغی که این بزرگ بزرگی داشتن که ایران در دوره اونا به بزرگ کرد جای خودش رسید از جیهون و جیحون یعنی از اون ته تاجیکستان تا دریای مدیترانه مملکت اینا اینا ترکم هم و بسیاری از زناشون مادر پادشاهان بودن معمون خلیفه مادرش کنیز بود می میابردن تربیت می کرده تعلیم میدادن ساز زدن آواز خوندن رقصیدن نرد و شترنج بازی کردن مباحثه در مسائل علمی حتی تعلیمات دقیق مفصل به اینا میدادن و هر کدوم استعداد خوبه میبینیم پشت کار خوبه خوبه اینجا نگاه کنین بیشترشون آریانزاله هست میبینین که اینا را تعلیم میدادن درسشون میدادن و هر چقدر اینا علمشون و تعلیماتشون زیادتر شد قیمتشون گروتر باشد عزت اعترابش هم رب بالا به طوری که کنیزی که قیمت زیاد و مثلا ده هزار دینار بود این اگه حاضر نمیشد که یه مردی بخره خوش نمیمد از اون کسی که میاد بخره صاحبش نمیتو میگفت خانوم حکی نمیخواف کرد زیوته البته حقم داشت یه خونه چیز بود برای اینکه وقتی زنک خوشش نمیمد تو خونه اون هنراش رو به کار نمیورد دیگه فانا نمیشن به زور با که تو یه برست یا بیه ساعت بزن باید دلش بخواد اگر از آقاش خودش دلش درش نمیسن بعد هم بسیاری از این صاحبان اینا شیفده عاشق و بیقراره این خانمه ها میشدن و اینا رو آزاد میکردن و میگرفتن و تا آخر عمرم بهشون شما عشق میرزیدن به همین دلیل ترک به معنی معشوق به معنی زن زیبا آمده این توضیحاته اگیه وقتی احتیاج شد سر کلا برای امتحان در دو سه جمله باید دو ثانیه بگیم یعنی بدونیم اینکه تورچیه چرا معشوت شده تورچ و چه جوری نراوردن اگر اطلاعاتی در این زمینه بخواید که خیلی خیلی اطلاعات جالبیم، میام هست رو رو بفرمایید به کتاب ازار چپ اصلا اگر کتاب ازار رو نخوندین حتما بخونین برای اینکه بسیار کتاب جذاب جالب درجه یک است و خیلی اطلاعات زیاد هست از جمعه راجبی مطلب یه قصه یک کنیزی از تو بازار ده هزار دینار میخوام بهتوشنش بعد میگه که در حق ها... اون فروشنده میگه می در هر فنی از فنون و در هر علمی از علوم این خانم حاضره با علمای اون علم و استادان اون فن مسابقه بده اگر از اونا برد اون با میمش در اتاره. و بعد سحنه‌ای هم داره که می‌کنی که فقری آمد استاد علم فقر، این مالو بود باز اومد، چیز که همه رو، همه رو یکی‌کی همه رو، چیز که تعلیم داده بود البته این است ولی هیچ قصده‌ای نیست که از حقیقت یه چیزی نداشته باشه یه مثلا یه اثری و یه هسته‌ی حقیقی نداشته باشی خب، با این ما خواستیم زود بریم، این گفت که این ترک من یافتم پوست مید پیش سپه تیز بشتافت میگه من زودتر رفتم جلو از پیش سپه و این قانوم من پیدا کردم به دو گفت گیف ای سپه دار نه نبا من برابر بودی سپه میگه وقتی تو از سپه جدا شد اومدی بری معینایی من که منم پلو به از تو عصد من با تو پ... نبودم از که تو بی سپاه تاشتی می‌رفتی آیا من با تو نبودم؟ نبا با من برابر بودی بی سپاه؟ به همان توسه نغذر بدان بستوهید ستیهیدن پس سه در همون یه زرق ماه شده همون سه تیزیدن، یعنی سه تیزدی. پس سه یعنی مرافق هم معرف ستیز کارم جنگ هست. یعنی ستو بگو مگو کردم دعوای لحظی کتک نه اون ستو هم از همین او معنی اون ستو دیگه اونم یعنی اینکه که طاقت آدم تمام بشه دیگه به ستو بامدنم یعنی دیگر پدرم در بود برد همان توبس نوزر به دان کجا در شوانا بزودی در بسیاری موارد کجا به معنی که میاد این از مشخصات شوانا کجا به معنی که اگر به معنی یا که الان میره اگر به معنی یا مگر به معنی شاید این معنی ها امروز به کار نمی یعنی حتما باید سر کلاسیت میکید مگر الان قید استثناس یعنی میگیم همه آمدن مگر بوسین اگر قید شرطه اگر آفتاب روز روزه و کجا قید استثنان برای مکان ولی کجا منی که قدیمیه اگر به منیه یا قدیمی اینا همه رو میرسیم بنابرای من توجه داشته باشیم پس کجا پیش عصر من آنجا رسید یعنی که عصر من پیشتر رسید گیب که میگه من با هم نبودیم میگه نه آنجلو فرده به دو گیب گفت این سخن خود من گوی که من تاختم پیش نقجیر جود میگه این فرمایش ها رو نه فرمایش ها رو نمی فرمایش ها زاده من جلوتر بودم نخجیر جوه یعنی دوینده شکار صفت فائلی مرکب مرکم این دفعه تو؟ چون این دو خطیه؟ آه آخرا این کتاب اون زیراشو نه داشته، زیادی فوتنوت داره فوتنوت هم برای این میگیم که شماها بگیم هاشیه که نمی فرمین خیلی فوتنوت داره برنید اونجا میگن چرا این اون بیت هایی که فکر میکرده که کاملا یقین نداره که مال فردوسی باشه بیت هایی که بهش الهاقیه اینا رو میذاره توی رکی بدو گفت گیر وی ای این سخن خود مگوی که من تا آفتم پیش نخچیر جوی نخچیر جوی یعنی نخچیر جوینده صفت فاعلی مرکب مرخم اینو توضیح دادم که براتون قبلا که چون خیلی زیاد بشه این نو باطی خیلی خیلی زیاد بنوریم مثل سخنگو، حمج گرگو، محجیر جو، نمیدونم هر سال اینا اینو بعد پیش لسین ترکیب صفت فاعلیه خیلی مشکلم نیست اگه یاد میگیریم صفت فاعلیه چون ترکیب شده از دو کلمه مرکبه چون دومشم باریدن مرخم حفظ نباید کرد باید فهمید یادم یادش نمیده که من تا پیش نخچیر جوی ز بحر پرستندهی گرمگوی پرستنده رو اون دفعه معنی کردم و خدمتکار گفتم ز بحر پرستندهی گرمگوی گرمگوی یعنی خوش سخن شیرین سخن گرم سخن تو درنش گرمه دیدید آدمایی هایی که مثلا میدید خیلی هم آدم زیبایی نیست اصلا ریختی نداره این محلوم دکتر شریعتی یه چیز زشتی بود. آبل رو هم بود آبل رو و سیاه چهره و... بود ولی وقت درنشت باهم کرده هر از وقت که دانش آموز بوده در بیرستان اینو می که توفرنانی بکنم. درنشت باهم کرده همه رو می میکرد و همه کارش هم همین بود اتفاقا برای اینکه علم زیادی هم نداشت اصلا هیچ کتابی تا آخر نخونده بود ولی گرم سخن بود زبهر پرستندهی گرم بوی نگرد داد جوان مرد پرخاش جوی گرم جوی و پرخاش جوی هر دو سفر پایده مراکم مراکم پرخاش جوینده و گرم جوی. سخونشان زده تندی به جای رسید که این ما را سر به باید برید بلاخره مرافعشون حرف تندشون تا اینجا رسید که آه اینو میکشید از شهر راحت میشید که نه من میانشان چنان داوری شد دراز این چون رو که میبینید چه و نون می این رسم قدیم نوشتن این از این های خیلی قدیمی تحقیه شده نشون میده که گاهی این واپ های ها بابا رو مینداختن چون اینطوری اینطوری مینوشتن یا من نسخه ها دیدم که خورشیدو رو بدون می مینوشتن اینا قراردادیه میتونید اینا قراردادی یعنی قرار این است که چون رو واپ مینوشتی ولی چون تلفظ میکنی با ها میشه چون رو نوشت همجرکی دعاوری دو معنی داره یکی شما میدونید به معنی حکم کردن و رعی دادنه قضاوت نگفتن برای اینکه قضاوت قلطه یعنی ایرونی ها ساختن اصلش قضاست این شما در عربی کلمه قضاوت رو پیدا پیدی نمی کنیم قضاست قضا و همچنین رضایت غلطه ما رضایت نداریم، رضاست شما تو تمام صدی به گردیم یک کلمه رضا پیده نمی کنی. نه، رضایت پیده نمی کنی. چهارم تواضع رضا فنجمیم ششم ذکر مرد قناهات بزیم غذا یعنی او کردن داوری هم و هم داور یعنی خاضی یکی یکی هم به منید جنگ و دعوات اینجا این معنی دوم معنی که شما نمیدونید با سر کلاس باید یاد بگیرید چون چونان داوری یعنی اون بگو مگو اون دعوان ایراز شد میانجی بیا آمد یکی سرفراز، یه مرد سرفرازی آمد وساطت کرد میانجی یعنی واسطه شده برای که شاهدی برای کلمه داوری یعنی دوان داشته باشید بیتی داره خاجحافظ، مانه قرن هشتم فردوسی مانه قرن چهارمه چهار سال ساله بعد یک حرف سوفیانه بگویم اجازت است. این نور دیده سلح به از جنگ و داوری میانشان چون, چون داوری شد دراز میانجی بیامده اینکه سرفراست که این را برای شاه ایران برید بران کوم نهد هر بران کوم هر دو فرمان برید میگینه ببرید پیش شاه ایران هر چیو قرار داد دوتایتون قبول رو کنه. فاصله بعد از نهد بران کو نهد هر دو فرمان برید اگه بکن نه هر دو غلطه بران کوم نهد هر فارم فرمان باید. نگشتند هر دوز گفتار اوی یعنی چی؟ آره یعنی سرپیچی نکردن از حرف او بر نگشتن شاه ایران نهادند رو روشنه بخون خواهدن شکابوز روی کنیزک بدید بخندید لب را به دندان گذید به هر دوست پهپت، چن... به هر دوست پهپت چنین بود شاه که کوتاه شد بر ما شما رنجرا بر شما که کوتاه شد بر شما رنجرا بر این داستان بگذرانیم روز که خورشید گیرند که خورشید گیرند گردان گردان بگیرید خورشید گیرند گردان بگیرید گَوَت مَن اگر آبوی دلبرد شکاری چنین از درد از درد مهتر از درد مهتر یعنی این به درد من میخوره درد شما نمیخوره به دو گفت خسرو نجانت چیز چهرت که چهرت همانند چهره تریست به گفتا که از مام خاتونیم خاتونیم به گفتا که از مام خاتونیم به سوی پدر آفیدونیم نیایم سپختار نیایم نیایم کارسی وزن، کارسی وزن. بدون به دو مارز. خاکوه او میکرد. بدون او نژاد همین خواستی داد پاشه دید خونه بابایت رفتی؟ تو بیا که که هرکی اومد گیره بره و بره نخواستی این روی و موی و نجات رو به بدی؟ به مشکوی زرین زرینه زرین من بایده سر مهرویان کنم شاید. چون این دار پاسخ که دیدم تو را ز گردن کشان برگذیدم تو را بوتن, بوتن در شوستان پستاد شد بفرمو تا برنشی ند بگاه بیا سندش به دیبای زرد به یاغوت و پیروزه و لاجوند دگر ایزدی چه باید بود یکی سرخ یاغوت, سرخ یاغوت بود نو بسیار بسیار <تصفيق> میگرم اصلا شاه ایران تو کابوس روی کنیزک بدید اینو قبطا توضیح دادم کنیز درست معادل کلمه مادمزل فرانسه کنیز به معنی دختر بالق شده آماده برای شوهر کردن و این لقبی که حالا ما برای دختران شوهر کرده میگیم دوشیزه دوشیزه معنی دختر خورد سال از کلمه دوشیدن میاد یعنی دختری که در دوشیدن گاو با مادرش کمک می‌کنه دختر 5 6 ساله رو میگفتن دوشیزه و دختر بزرگ رسیده‌ رو میگفتن چند در گرشت آسنامه عصدی همینجا شاهزاد خانم میگفته کنیز همینجون به کاخندر از دان کنیز خانبارین فکر نکنید که این کنیز اینجا زر خرید منیده اما چطور شده که من این زن زر خرید شده که میتونه بگه اون ترمان گفتیم اینجا کدوم از یادشون هست؟ عسکری تو یادت هست؟ <تصفيق> <تصفيق> خیره، آنه، علمایی. چرا، چرا به معلی خدمتکار شده؟ زرخدید هستن، خدمتکارم نیست. کسانی که موقعیت پستی در جامعه داشتن، سعی می‌کردن، لاقل اسم خوب رو اینا بذارد، برای دلشون دلشونو دست گیرد. من یادمه که بچگی بچگی ما سکورایی که خیابونو آب میپاشیدن جارو میکردن و اصلاح خاکی هم بود آب میپاشیدن هر روز اینها رو بشن احتساب یعنی بازرس درزم امیدوارم انشالله بتونید سفور هم از خجا آمدید ام؟ توی که دیگه باید بیندونست این سویپره <تصفيق> سویپره یعنی رفته گفت جالو کشم از جنوب آمده دختران زرخرید رو هم که دختر جوان زیبا بوده بهش گفتن کنیز یعنی مادمزل برای اینکه اسم خوبی بدم. بزن محروم پورداؤد استاد ما که در یمن به هممالا میگن فقیح یعنی دانشمند اینو عرض کردم برای اینی که یه چیزی دیدید اسمشون اه... خیلی زشت نباشد اسم قشنگ روشون می‌زشد کم کم، در پهلاوی هم هست کنیز، همینه یعنی مادمازده دختر جبان بعد کم کم معنی اصلی کنیز فراموش میشه و مطلقا کنیز میشه معنی زن زرفای به طوری که الان به کسی بگیم کنیز بوجه کنیز، کنیزک یعنی دختر جبان چون اینجا پیداست که این زن که زرخرید نیست که گفته که از طرف مادر خاتونی هم حالا میرسیم از طرف پدرم از نجات فریدونم بنابراین این زن زرخرید نیستش که زن آزاد پدر مادر داره اصلیل شاخصاده هست. ولی میگه چوکاووس روی کلیزک بدید یعنی روی اون ما تونزل دید بخندید و به بار باه شدونه لب را به دندان به هر دوسته فهمت چونین گفت شاه که کوتاه شد شما رنج راه گفت خب هم دیگه زحمتتون کم شد زحمت راه کم شد بر این داستان بگذرانی روز که خورشید گیرند گردان به یوز کی میتونه معنی کنه؟ یوزم که قبلا گفتید گفتیم که خیلی پنیر دوست داریم معنیم به تو فرمیم شما بیتای سخت کنیم پرسیم معنی کنیم جان؟ باید حتی بیتای آسون هم دار پرسیم معنی نیکنیم آه، نه <معنیم> حفظ <معنیم> کنم که کلمه داستان یک معنیش زربال مثلی در شانومی فضوسی داستان به معنی مثال به معنی ضرور مثال پراورب میاد و اینجا همینطوره داستانی نداره اینجا میگه با این مثال میزنه خود کابوس میگه با این مثال روزمونو بگذرونیم که پهلوانان به وسیله یوز خورشیده میگیرن؟ یعنی شما ها یوزین این خانم خورشیده و از این برای این داستان باید ذرا روز خود کابوس بله بله گردان اینجا خودش بله حادشان همشون حالا نامو هم الان میرسین تحیات که میگه میگه که تمام تمام آینهای پهلوانی رو نه یا بعد پن خوب مریندا روشن شد بر این داستان بگذرانی روز که خورشید گران گردان به یوز اینجا اگر بنی یا گفتم اگر بنی یا هم جس جوز نست اگر آهوی دلبرت چه کاری از در است. از در به معنی شایسته و سزاواره بازم از ترکیبات خیلی قدیمی الان به کار نمیشه از در یعنی سزاوار و شایسته میگه این خانم اگر گوزنه اگر آهوی زیباست به هر حال یه چنین شکاری، شایسته آقا، شایسته عربا به نوکرها نمی <تصفح> بعد ازش می بدو گفت، خسرو و نجاز تو چیست که چهره همانند چهره پری پری یه ای آخرش چیه؟ اولش که پریه هم؟ یک کلمه است خب اسمت اولش پره مالون یک کلمه است مالی با اله یای نسبت این پردار پری؟ یعنی پردار موجود ایسا افثانهی ای میدونید اون دو چیزش نمیدونید یه من میگم و بعد اگر سوال شد انشالله جواب یکی این که فکر میکردم این زیبایی فوق الادهی داره تا اینجا میدونید این فوق العاده زیبا به طوری که این قسمتش دیگه نمیدونید به طوری که هر کسی چشمش به پری بیفته، پری ببینه، دیوانه میشه. به همین دلیل از زبان فارسی پریدیده و پری زده به معنی دیوانه. است. و پری بند به معنی کسی است که مثل مثل مثل مثل, مثل و رحمالا و اینا پری بند و همینی که با ورد و افسون و اینا این ضرر پری رو از اون دیوانه درمه ها پری هم در همون ردیفه بید اونم موجود افسانهی حیالی نافیداز پری هم نافیداز به چشمه همه نمیاد و میتونه تغییر شکل بده خودشو به صورت کبوتر درمیاد پر میزنیم میره اونجور که در افسانه ها آمدیم پری و کسانی که میخواستن دست رو پیدا کنن اون جلدی کبورترش رو خواهم میکردن بعد این میمونده دیگه. این یه نشته نشته دوم که شما نمیدونید این است که در کتاب سمک به قصه داستان سمک ایار میگوید که پری فوقلاده زیباست ولی بوی بد میده و به همین دلیل جایی که پری آمده باشه از بوی، از اون بوی بد میشه شناخه اینجا پری حالا این چجوریه؟ من خیال میکنم این دیگه تو تمک عیال ننمشت. این کار منه دارم به شما میگم خیال میکنم که یه نوع گازهای سمی بد مثل میتان و اینا که تو جنگلا و باطلاها و اینا بوده و وقتی مردم می رفتن مسمون می شدن و گرفتارا حالویسیناسیان می شدن و یه شکلایی به نظرشون می فکر میکردن پری بیدن اون بوی اون نوع ها و اینا رو نوشته که اوی پریه که بود بعد نکته ثبه که نمیدونید پری در ادب فارسی و حتی در مزد زردشتیان امروزی پری موجود خوبیه یعنی زیباست خیلی مردم دوست دارن که ببیننش حتی اگه بتونن گیرش بیارن باید زندگی کنن یعنی بگیرن شما و موجود خلاصه احریمنی نیست در حالی که در عوستا پری موجود احریمنیست یعنی پری و دیو در عوستا در یک ردید شما میدونین چرا عوض شد؟ به فریبندگی و زیباییش بودیه الان مراسل میدارن زر... حالا که ندارن مال تقریباً ست سال پیش که کرمانی مینویسه که زردشتی یا صفره دختر شافریون میدازن یعنی وقتی مرادی دارن یه مرسودی میخوان چیزی میخوان صفرهی میدازن که دختر شافریون بیاد و مراد اینا رو بیادن. بس وقتی که سر این کلاس باید یاد بگیریم یکی این است که پری از پر صفت نفتی است از پر زیبایش باعث دیوانگی میشه پریدیده و پریزده و پری بند به معنی شخصی که مثل جنگیر و بوی بد میده و این بوی بدم عرض کردم نشون اون مذهب است که در بعض جا از ناسالم سالم داره ایجاد خیال میکنه این خیال میکنه چیز بالاخره پری در ادب فارسی موجود اهریمنی نیست و حتی نزد زردشتیان و بعد از اسلام موجود اهریمنی نیست و هایی که در اوستا در موارد متعدد هر جا ذکر پری شده همراه دیو و پنجوز اهریمنی است دلیلش هم همین بوده است که گفتن که این دیوانه میکنه و دیوانه یعنی کسی که دیو در او اثر کرده، که دیو یعنی شیطان و اهریمن. ولی ببینید فردوسی اینجا که چهره تمامند چهره فرید یعنی فرید موجود خوبیه. آنجا خب بگفت که از ما خاتونیم. خاتونی هم. دیگه نه این پرسن مقصود اینه چه مادرم کنیز نیست. خانم. و خانم کلمه مغلی است خانوم که الان میگیم کلمه مغلی پارسیش بانوس و خاتون کلمه خان لقب رئیس قبیله های مخل چنگیز خان فلاکو خان ولی تیمور چون از خانواده رؤسا نبوده بهش میگن امیر تیمور نمیگن تیمور خان امیر تیمور معنس خان میشه خانوم یعنی زن رئیس قبیله حالا در فارسی خان و خانوم به عنوان لقب معترم پوشنگ خان خان و خانوم هم به جای بانو آمده کلمه خانه به صورت در فارسی وعنی خانه است. خان در فارسی وعنی خانه و کاروانسر هست یه خانم با باب داریم که صفره صفره که می خاتون فارسیشی حباید زاقانی نوشته که مجددین همگر را مجددین همگر شاعر مجددین همگر را زنی بود پیر و بقایت و بچک از اسفان بازن. مجددین در مجلس وزیر نشید خرام آمد و سر به گوشم او نهاد و گفت خاتون به خانه فرود آمد مجددین گفت ای کاش خانه به خاتون فرود آمد از <تصفيق> کنم که خا... خاتون یعنی خانوم گفتا که از مام خاتونیم یعنی مادرم کنید ز سوی پدر آفیدونیم از سوی پدرم دنیا. نیا هم سپهدار کرسی وذ است کرسی وذو قبلا عرض برادر فرقر اخواسیا بود اما کلمه نیا در فارسی من چی چی جد جد پدر پدر یا پدر مادر یا پدر پدر پدر ولی یک معنی دیگر هم داره که ما نمیدونیم نیا به معنی دایی هم هست برادر مادر یادتون است که جامعه های قدیم در مردم شناسی لافت گفتن براتون شنیدین که جامعه ها مادر سالاری بوده یعنی زن رئیس قبیله بوده و مرد رو انتخاب میکردی وقتی هم که میخواست مرد ردش کنه از تو نیزه زین اصلشو بذارن دیرون در خونه یعنی خب وقتی که مرد ستون خانواده نبوده و زن بوده که زنی بوده بچه دورش این بچه ها بزرگر میخوان دیگه اصلا پسرها تو اون روزگار باید شکار زنوگی سخت بوده دیگه باید شکار، باید برن مثل هم تحیان وزیق، تو دریا یا سیده تو جنگل خیلی تعلیمات باید ببینم. کینه تعلیم میداده؟ دایی. یعنی دایی وزیفه تربیتی پدر رو ببینده این هست که نیای هم سپهدار گرسی و زیست از دو حال خارجی یا محسوس جدشه جدش هم یا جد پدریشه باید پدری باشه برای اینکه مادریشون میگه خاتون و هست یا داییشی این داییش هم باشه باز این خانم میشه خارزاده گرسی و اگه جدش هم باشه میشه نوه گرسی و بعد خواهیم دید که این خانم سیاوش میزاد بنابراین گرسی و ازیاد دایی مادر سیاوش شبستان میگه نه همون شبستان این جای شب همونیست که بهش میگه متاق خواب که آفاسمان دوتا خوابه متاق دو خواب یعنی متاق خوابه که منبولا شبا توش نیستن روزات توش نیستن دوشت. شب باید مردم بیرون هستی میده سر کارش تو خونهش باشه اگه تو خونه کار کنه میاد تو دفترش یا کارگاه است که تو که ها, ها بشه میگن شبستان یا میگن مشکو و زنها که کار نمی کردن معمولا در شبستان میده به دو گفت به مشکوی زرین من بایدد یعنی لازم است که برید در مشکوی در اتاق اتاقه آراخته زرین من سر محروم جان کنم شاید هست. یکی از کلمات که باز در شانوه منیش فرق داره با محفزده شاید الان قید تردیده درسته؟ بگیم شاید بیان شاید بیان یعنی ممکنه بیا ممکنه نهی قید تردید در حال اصلا این کلمه فعل مزارع از مصدر شایستن درسته؟ شایستن یعنی سزاوار بودن شایسته یعنی سزاوار مازیش میشه شایستم شایست می شایست مزارعش میشه شایم شایی شاید درسته؟ شایم شایت، شاید شایی شاید, شایی شاید. شایی شاید. یعنی سزاوار هستم شایسته هستم شایسته است، شایسته است. ها پس شاید یعنی سزاوار است. کم کم این فعل اون اشخاص دیگهش اول شخص دوم دوبام شخص و اشخاص جمعش اصلا به کار بگی نمیش شایم شایی شاییم شایی نیست ولی قدیم بوده تو که اله آمده که گرد دسته گل نیارد از ما هم نیمه دیگ را بشاییم یعنی اگه ما کار دسته گل رو انجام مندیم لاقل کار هیگزون زیر دیگه که انجام به بشاییم این همینست باید از مستر بایستم به منی لازم بودن بایستم بایستی بایست درسته؟ شما از فارسی جبونه بیگه بایستم بایستنی بایست بایستین بایست بایستن تن مارش مضارشم میشه بایم بایی باید با این بایید بایم تمامیه لازم بوده بایم یعنی لازم هستم بایی یعنی لازم هستی باید یعنی لازم هست با این بایید باص اونم همه اشخاص دیگهش رفته بایم با این با این باید نیست بای بای فقط باید بشه. کلا تمرکزش چی میشه که چی؟ بولا اژینشن تو دستور روش ولی در زبان فرانسوی فعلی هست شدن فعلی امپرسونل یعنی فعلی که اشخاص نداره. مثل بارفمدن بارفمدن فعلی داره میژه نج یعنی بط، نجه یعنی بط آمده بعد نمیشه بگیم که بط می آیم بط بیایی که نمیشه که بط هست این نج یعنی بط می یا بارون آمده هم نمیشه بگیم بارون می آم بارون می آم بایم فقط هست این یعنی PLEW بارون می آم این آن رو میگم فیلهای یعنی فلایی که شخص نداره این شخص داشته در قدیم من بوده ولی حالا میشه گفت فلای یک شخصی یادم یه روزی سخن سنجیر ارس میداد مرحوم دکتر صورتگر امسر کلاس نشسته بودیم صورتگرم زیبا پسند بود یعنی چهره زیبا دوست باشیم مثل همه مردم هرکی به این که من دیدن رخصار زیبا لذت نیبرم خیره ولی عادت صورتگر این بود که وقتی درسش رو میکرد، دیگه کسی نیاد کنید می... معمولانم بچه ها میرونستن دیگه بیر میرستن، نمیمودن اینکه استاد آقاچه طرف میشد و رشده کلام سفاره میشد و گاه یه مطلقی هم از طرف میگفت و نمیمودن یه روز استاد آمد، معمولانم میمودن میرشد مرحوم پوزنفر، استاد بزرگ وردم، اونم همیدون همین اخلاقا دوست نداشت که بعد از کسی یک ترکیل آمده بود. نشسته بود. محروم نکرده بود. هرشو نکرده بود. چند ثانیه بود. نشسته بود. ده دختر بسیار زیبایی. آمد و سلام. استاد نگار کرد اینو <تصفيق> الان این بیت رو خونمون این بیت نباید که این نباید یعنی لازم نیست دام نباید بره ما ترحالی تیگه این در رفته ها بود دخترهای زشت هم یکی زبود نشستن ما بایی این یعنی لازم است میگم اونایی که لازم نیستن به در نمیخورن زود مییاد تو که به در میخوری دیر میاد آنچاس آن که نباید برای ما زودتر آید تو دیرتر آید برای ما زانت ببایی قید انتظام شاید هم شده قید تردید اسمان اگر پرسیدیم انشاءالله می نویسیم که باید مثلا قید انتظام یا شاید قید تردید ولی قدید نبوده. نباده شایدد یعنی شایسته سر مارویان کنم شایدد یعنی اگر تو رئیس بانوان حرم و ماغویان حرم بکنن حق به ته شایستی دختر خانوم تو شاهنامه در رابطه زن و این مسئله مهمه هستش جاهای گم هست دختر باید رضا بدیم چون این داد پاسخ که دیدم تو را ز گردن کشان برگ از دیدن خب میگم منم شما رو میخوام قبول دارم سن شما بشت. چون این دو خاطر دیدم تو را توقتان ز گردن کشان برگ از دیدن تو را بوتان بله این چه گردن کش معنی بعد پهلوان نه باهلاو اهلاو چون بعدن گردن کش معنی بعد واهی معنی بد داره البته ولی اینجوری نه اهلاو خود در شبستان پرستاد چا شبستان هم که عرض کردم استان پساوند مکانش شبستان یعنی جایگاه شب به فرمود فرمودن همونی دستود دادنه الان ما یه ذره معترمانه تر گفتنه میگیم فرمودن اگه پایین تر میگیم عرض کرد اگه همسر باشیم میگیم گفت اگه بزرگتر باشیم میگه فرمود ولی در حقیقت عرض کردن رو عنیه نشون دادنه همین عرضه کردنه گفتن گفتن فرمودنم یعنی دستور دادنه ولی اون که کچکتر اگه بچه به مامانش بگه یه دیبان آب به من بده مامان این فرمودنه این دستور میده این آب به من. پس هم در شبستان فرستاد شاه بفرمود یعنی دستور داد تا برنشیند به گاه گاه دعنی تخته چندین معنی دیگر هم داره و معنیارم بگم براتون یکی معنی آهنگ و سروده در دستگاه های موسیقی داریم دستگاه سگاه چهارگاه راست پنجگاه راست پنجگاه مراکب از دو تا دستگاه راست و دستگاه پنجگاه در که عربی دو هم دارن با همین اسم اسمای فارسی گاه و همین نرمان کتابه یعنی یه قسمت از عوستا که میگن که قطعا مال زردشته اسمش هست گاهان یعنی سروت گاه این تخته منازم می توانید. گاه پساوند مکانه مثل باشگاه ورزشگاه خوشدارگاه پساوند زمانه مثل صوبگاه شامگاه به معنی خود زمان هم هست گاه آن رسیده که من پلان کار کنم، یعنی وقت مفهنده تا برنشیند به گاه یعنی به طرف بشینه معمولاً برنشستن وقتی بود که نشستن بالا سوار از بسدن رو همیشه همیشه میگن برمیشستن نمیگه نشست رو تخت چون بالاتر از زمینه میشه برمیشستن معنی بلندی و بالایی میتونم تا برمیشین دو دار بیا راستندش به دیبای زر دیبا پاچه عبیشمی کلوفته در دنیان کارچه عربی شمیه نازد عربی شمیه این بوم های نقاشی رو یه روست نقاشی میکنه الان گاهی عربی شمیه، عربی شمیه کلو خوب البته ولی این گرونه و از قدیم، از هزاران سال پیش این کارو میکردن چینی روی دیبا نفش میکردید صورت کنند زیبا برپرمیان و دیبا لیکن در افروبان منش زهر مبین نباشم اون چیزی بوده که مرزی خونده بود بلا هم خونده صورتگر نکاشی چین صورتگره دیبای چین یعنی کسی که رو دیبا مرکز عبریشم میدونی که چین بوده مدت‌ها ابریشم پرورش میددن و سرنش نمیگفتن جایی پس کجا میارن یه جاده راهی بوده راه عبریشم معروف بود صورتگر دیبای چین بو صورت یارم ببین یا صورتی برکش چنین یا ترک کن صورت این دیبا تصویر آستندش به دیبای زرد به یاغوط و پیگونزه و لا بر یاغود سنگ بسیار سختی است قرمز سخت فقط المات از این سخت باقی باقی سنگ ها همه از یاغود سست یاغود بلوری شده خاک روسته خاک روست کریستالایزد که بشه میشه یاغود اون دفعه هم اون کلاس هم گفتن این هم خاک روست صورت امرف یاغود تحت فشار و حرارت خیلی زیاد اگر خاک روست تریستالی زرشه میشه یا خود اون سرخیش هم برای اکسید نیست که دست میشه خود خاک روست هم که سرخه مال اکسید آهنه اگر اکسید دیگری توش نباشه فقط الو سفیده خاکی که برای چینی به کار می‌برن گولن این آهل دو و پنجه چیزه خالص. و اگر او کریستالیزه بشه میشه یاغوت سفید یاغوت زرد رنگ که بشه میگن بیجاده بیجاده یعنی یاغوت زرد بسیار رنگ های دیگر هم هست یاغوت کبید هست لعل هست که همین کم هر یه قدید. و هرز بودتره لنگ لنگ لنگ کم رنگتر از یاغوت یاغوت نوع محروم بشه لعل لا. اصلا اینی سرخ لعل لا و لال یعنی <ناوب> سرخ لاله یعنی گلی که سرخ رنگ حالا بگذاریم که الان در هلان در بله در هند هست چرا همون کلمه همون کلمه لعل آمده توی ایران هندو اروفایی که هندو اروفایی هست که هندو اروفایی هست عربی هم رفته همون لال وله لال یه محله هست در راویل پنجی و این همون لالکورتی کرتی قرطه یعنی پیراهن لالکورتی یعنی پیران قرمز ها محلهی پیران قرمز ها سوخ جامدان این سنباده چرخ‌هایی که باش فلز رو می‌تراشم، چیز می‌تنه این خورده‌های یاغوت خورده‌های یاغوت، اینجا از من سخت‌ترین پولاد رو می‌سارم اصلا باش پولاد و آهن اینا اینا رو عرب چلو بخوان، با سنباده می‌کنن، یه سنباده یاغوت خاکه‌های یاغوت این قصد پیروزه ور اکتنگ سست رنگیه بهترین شمال نشابوره و شربی فاسدش می‌کنه. کنید رنگشو بر می رنگ نوعی سنگ لپیس لزولی سنگ لاجورد در افغانستان زیاد. و خیلی زیاد هم گرامبه ها نیست ولی سنگ قیمت. بیا راستان داشت به دیبای زر به یاهوت و فیروزه و لاجورد اون بیت بعد ما توضیح دادیم در امتحانم بود دگر بودنی هرچه باید بود یکی سرخ یاهوت بود نابسود کدوم اکی از بچه های پیش یادشونه این معنیش چیه تو هم سوال بود بگویید نه آفریدن نیست انجام هم این عرضش کردن ایزدی زدی هر چه بایست از بایستن الان حسودیم که هرچه از طرف خدایی از جنبه خدایی لازم بود بایسته بود بود یعنی مراسم دینی و مراسم ایزدی رو دربار او انجام دادن دیگر بودنی هر چه بایست بود درست یکی سرخ یاقوت بود نافسود قانون یاقوت سرخ ده نخورده‌ای این چی؟ دختر بود. باکره بود. بی کره تو بود. تو تو عوید میگه که زنی رو گنیزکی رو تو بازار میخوختن یا رو که بابایی که اومد بخره گفتش که تو باکره ای؟ گفت خدا منو ببخشه. بودم. خدا <تصفيق> خدای بر من ببخش آید. بودم. با خونه دو سه به بسی بر نی آمد بر این روزگار که رنگ اندر آمد به خورم بناد با شا کاووز که کاووز که که برخوردی از ماه فرخونده پی. یکی کودکی بر, بر آمد تبیر کنون تخت بر آه. از باید کشید جدا گشت از او کودکی چون پری به چهره به سانه بط آزری جهان گشت از آن خورد از آن خورد جهان گشت از آن خورد خورد خورد گفت بود گونه نشنید کس روی مود بس. بسیار بیشتر نیست پس ای برنه آمد در این روزگار یعنی خیلی نگذشت موتت زمان زیادی نگذشت که رنگ اندر آمد بخوردن باهار باهار ستا معنی داری یکی شو ولد موفه دو هست دوتای دیگه هست که زید یکی باهار معنی شکوفه است. باهار نارنج یعنی شکوفه نارنج هنوز در شیراز رفتی میخوام بگن که درخت ها، درخت های مرکبات، پرتقال و نارینجن ها گل کرده میگن باهار کردن یعنی گل یکی هم به معنی معود بودایی است؟ اولا بودا بودا است که در فارسی کم کم شده بود فران که هر, هر بودایی باید مجسمه این تو خونه داشته بشه بعضا برای نیایش گیرن جلو اون اینو فکر که این پرستیدن اینه فاید که همونیستان بود پرستیده اینش اینست که به عربی بود میشه سنم به که ایدول میشه و ایدول میشه و مخفف شده همون بوده است. و بط کده که میگن یعنی معبد بودایی بعد یه شهری داریم الان در, در اوزباکستان بخارا, بخارا با همین بحاره به نحنی محوض بودایی یکیه و به هم بدل میشه اینجا که میدونه جی رو در اسپانیلی یه چیزی بین خ و هه میبین فنحوزه فنحوزه هه هه هه و هم بدل میشه بخارا یعنی محلی که بحار درش بوده یعنی معبد بودایا. یکی هم در بلد بوده که معروف بود به نوبهار بلد ولی اینجا بهار یعنی اون گل محصود اون خانمه. یعنی خانم آبستن شد رنگ روش برگشت لک ها برسید بس این فرمایه بر این روزگار که رنگ هم در آمد به خورنبهار به گفتن با شاکا شا, حوسکی که برخوردی از ماه فرکنده بر به معنی میوه گفتن که میوهی که از این از این ماهی از این دختر زیبایی که در شرستان آوردی برخو, برخوردار شدنم معنی میوه خوردن دیگه فرخورد یعنی میوشت میوه داز. این درخت وجود و او میوه داز. یکی کودکی فررخ آمد فررخ یعنی مبارک خوجستش یکی کودکی فررخ آمد پدید کنون تخت بر ابر باید کشید یعنی خیلی تن سر بلند بود تخت بر روی ابر یعنی خیلی شادی بود خیلی فرخواد کشید فر جدا گشت از اون کودکی چون پری از اون خانم به چهره به سامان بوت آذر ببینید که آذر بازه است این اسم پدر ابراهیم حضرت ابراهیم آذر بختراش پدر حضرت ابراهیم که شیعه معتقد است که اموش بود پدرش نبود در قرآن مفتد پدرش بود خیز خاله گاهیم و لعبیه آذر پدرش آذر شیعه به اینکه که معتقدم که تخم پیغمبر و نسل پیغمبر اکرم نباید در به هیچ کافری باشه یعنی تمام اجداد پیغمبر اکرم تا آدم همه بر دین حق بوده بنابراین اگه بگن آذر پدر ابراهیم، پدر ابراهیم، تراشه این میشه روی پدران و فیغنبر یکی بطرست در اونیت اینی که گفتن بابا رو گاهی امو هم میگن، امو رو گاهی بابام میگن اینی که اونجا آذر اموش بود ولی سایر فرقه های اسلام که چنین اعتقادی ندارن فکر نمیکنم که این ربطی داشته بود و پدرش هری میخواد باشه گفتیرم پدر تو بود فاضل از پ پدر تو را چهاصله عکسش هم هست اگه پدر تو آدم ننگینی باشین به تو مربوط نیست کسی پدرش اختیار نکرد نمیکنه باقا بنده هممال جنایت کار منم من که او رو اختیار نمی کنمم به من مربوط می تم بادید من کرتن. این هست این است که باقی تویقر از پدرش پر آذر گفت تراش و بط آذری اینه خیلی زیبا سه تا آذر داریم یکی اون آذر بازاله که همتون بلدیم رنی آتش اسم اون ماه بای اسم شخصم یکی آذر بازه که همین اسم تدر ابراهیمه یکی هم آذر حضرت عیسی ها رو این اینه کسی میشنسی؟ این شفت تو روز موجزات حضرت عیسی یکی چی بود؟ مرد زندگی مرده زنده میکرد گفتن اون مردهی که از عیسی زنده کرد اسمش آزر بود. این آزر است که در اسمای یهودی اینا هست لازار. لازار، الازار شد لازار و الیازار اسم اون مرده ای که عیسی زنده کرد آزار بود عیسای گم میکرده اینکه که از گل یه چیزی به طورت مرغ درست میکنم درش میدمم به اذن خدا اون چون میگیره و میپره. اون مرد نیدون مر ایسامرغ مرغ عیسی پا رو میگن مرغ ایسا این چون در عدبیات آمده من برای شما میگن ش گفتن بر تو خ های بم بر باید بدونین به همین دلیل پای ندونیم که نمیفهمیم که مرغ ایسا چی؟ توی خاقانی ده تا 20 جا آمده مرغ ایسا جهان گشت از آن خورد پرگفتگوی بچه خیلی بچه جاله ای بود که خیلی سرسداش تو حرف می زدن چرا کزانگومه نشلی که روی و موی برای اینکه مثل روی او و مثل موی او کسی ندیده بود خواهش می دوستان درستاشون رو مطالعه کنم درستی که باید می‌خوام خواهم بزنید. اینجا تمام مطمئن شما ها باید بخونید و, و همه خواهم گفت بخونند بدون استثناء عهدید یادم بلنید این جلسه باید که آمدن راجع فیفره آمد